خب گفتی برج‌های بلند تهران برایت جالب است دیگر چه چیزی برایت جالب است؟ بزرگراه تهران هم زیبا و مدرن هستند بزرگراه تهران و پارک شاید بزرگراه مدرس را میگویی اطراف بزرگراه مدرس بسیار زیباست. بله من آنجا را خیلی دوست دارم، درختها و گل های قشنگی دارد معمولا دو طرف بزرگراه‌های تهران پر از درخت و گل است این بزرگراه‌ها ها بزرگی هم دارند بله، مهندسان ایرانی در این بیست سال بزرگراه‌ها و پل های بسیاری درست کردهاند. یعنی اینها را مهندسان ایرانی درست کردهاند، بدون کمک خارجی ها؟ بله، ایرانی ها بیشتر چیزها را خودشان تولید می کنند و می سازند. در شهرهای دیگر ایران هم بزرگ ها و های بزرگ وجود دارد؟ البته، شهرهای بزرگ مثل تهران پیشرفته هستند. چه خوب، شهرهای بزرگی مثل تهران و اسفهان باید پلها و بزرگراه‌های زیادی داشته باشند. بله، هشت میلیون نفر در تهران زندگی می کنند. هنوز بزرگراه‌های زیادی در دست ساخت است.